لذا فتحت لنا بلد اقمنا حدود الله وانقشعت وباب اقام شرعه حق علنا کلونه تېر شول چې موږ د یو رک ارمان او موخې د لاسته راوړلو لپاره مبارزې قربانۍ او زندانونه وګارل ټپونه شهادتونه او دردونه مو له خپلو کلو کورونو خپلوانو او ملګرو د جدایي او بلتون ژوند تیرول مو غوره کله داسې نانګګیرله چې هغه خلافت چې د مسلمانانو تیر برم او تاریخ را ژوندی کوي په سرحدونو ګندونو ژبو نژادونو او سمتونو ټوټې شوی یو ځل تر یو خلیفه یو بیرغ او یو قیادت لاندې راټولیږي تزرګونو دې ګناه مظلوم ممنانو له لاسونو به و ځلانې ماتوي د ناحيه فاطمه او افیا فریادونه ته به ورسيږي تزوري دلو کړي دلو خوندو یتیمانو اوخ کې وفا کوي د ټول شهیدانو فدایانو او به پوره کوي روافیض او شیاګانو اسماعیلیانو زیادیانو د خاده سنی مسلمانانو انتقام اخلي یوځل بیا به هماغه خلافت زموږ په جون کې راخاره شي او موږ به د هماغه خلافت عسکریو چې امام مهدی ته باستر کې لا ميسرها الا ان نقمها لها احتجاب قريبا قريبا ترى العجيبه صراعا رهيبا وسوف ترى حقیقتنا حقیقتنا سوف ترى بعقلي دياني مرتد حکمت سرکار دے داوانستان مرتد حکومت سرامکار دے اغوی درو سره سردو پیشرو استخبارات یا ایسای یا پاوج مرتد یا ملی اردو مرتد فوج یا بکیاں دو سر د جنگ دے مستقل د پاکستان خلاف د پاکستان فوج خلاف زهن لرو او بلکی دا متخان رکی سر ټول مسلمان د پرکوړتے هغه خلاف باندې موج چینگیو تر د پاکستان <سؤال> که زت بالا شو، ان شانا سر مدد جهاد ایراد در الحمدلله مونږ ته ډیر خوشاله غونډه ولوسستنی خوشاله زه چرته سره کومه بدریا نه دا کړی او الله دوی لمن ټول دنیا ته ورس دغه څنګه کوب چی داغم حکومت لاسه بندی او سامانونم وی او سامانونه بس کیستری دی دیو د مخا لږیم نه پریدي دولت الاسلام صالت و وعلى الطاغوت جانت دولت الاسلام حقیقتونه حقیقتونه د خلافت غږ راډیو کی با خبرونه کې به د خلافت د مسولینو مجاهدینو او عوامو خلکو لقلی دولت الاسلام عنا عنا. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد برذرانم و من السلام عليكم و رحمة الله وبركاته. برذرانم گرامی دبیرنامه قبلی شنیده سخنان اصطلاع محترم که بعضی گفته نیا داشتند و بعضی در دهای دل داشتند که بر ما بیان کدن و زندگی خدا بسی بخش تقسیم کردن که دو دورزی دوران تلخیها بود و بخش سیومش بخش جهادی بود که انشاءالله تعالی در این موضوع پیش میریم و استاد در برنامه قبلی سخنایش کامل نشد مشلیم از استاد که وقت رفتن بخش سیوم زندگیشان در وزیرستان چی کارهایی را انجام دادن و چه قدر فعالیت کردن و چی سبب شد که باز آمدن به خلافت اسلامی استاذ اكرمش برما دني بارا چند لحظه سخن بگويه الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قال تعالى يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الكتاب قال تعالى والفتنه اشد من القتل وقال تعالی ولن ترضا عنك اليهود ولن نصار حتى تتبع بلته اما بعد تشکر از این که باز مرمو وقت دادین از سوال را که متوجب بنده ساخته مرحله سیوم زندگی بود و این مرحله مرحله جهاد و پیکار و کار و, و مبارزه مسلحانه بود در برنامه پیش عرض کردم بر شما که یک نقطه آغاز بخاطر این که ما وارد صفوف جهادی شویم شهادت استاد احمد زایر رحمه الله شخصیت فکر و اندیشه و یک مجاهد نستو بود که معلومات شهادتش بر ما رسید اگرچی ما او از نظر فیزیکی در یک حضور عملی با او ملاقات نکرده بودم ولی یک رابطه تنگاتنگ دوستی و یک پیوند ایمانی با داشتیم. او در پشار زندگی میکد و اما در کابل و همیش میخواست که با برادرای کابل ملاقات داشته باشه چون یک انسان معمول نبود از نظر سیاسی و یک شخص مطلوب بود بیشتر اوقات وقتی که با کابل سر میزد کوشش میکرد که در پرده های مخفی با مردم ببینه و در پرده های مخفی دوباره پس به همون جایگاه و منزل مقصود خود برسته خب وقتی که شهادت برادر یا دوست ما یا عالم نستو به ما رسید باز بنده تصمیم گرفتم و استخاره کردم که تصور ما ای بود که استاد به عنوان یک نقطه اعتماد چی ما حضور فیزیکی با وی نداشتیم ولی درسهایش به ما می رسید و ایره می دانستیم که استاد در ناحیه فکر و اندیشه یک فردی است که راه سلف تقیب میکنه و در سایش چی ما به شکل جدی تعقیب نکرده بودیم یکی دو بیانشه که در جاهای مختلف شنیده بودیم خیلی ها از شده بودیم و ایره به عنوان یک یک فرد مجرب متفحص و یک که در یک دستش بارود باشه و در دست دیگهش قرآن باشه و این صفت دیش باشه که علی علالحق و یا فی سبیل الله و واقعا دیده میشه بعد از استخاره در روز وقت دادم تا در یکی از پوهانتون ها کار میکردم و کارا را بالاخره در نقطه انجامش رساندم تا کسی که بعد از ممه برزو مشکل نباشه و از کابل به قصد یک سفر بدون بازگشت چون کسانی که رابطه ما را با این مردم که در پشاور و در وزیرستان بود قایم ساخت از در پیوان به معرفی امارت غلوی بشتر نمودند. ما چون در صف جهادی جدید بودیم زیاد گمان خیر داشتیم و زعم مایی بود که در صفوف جهادی اگر یک مجاهد تصویر می ده دقیقاً تصویر ازی به این آیه قرآن کریم سور می فیضا قلتم فعدیلو که سخن میگوین عدل رعایت کنیم و چون اینا خون می و ما در یک غلطی از نشستن و آسایش و آرامش بودیم که poesia بر ما بینوان روایت قوی بود و یکی از برادرا دوست ما بود که رابطه ما را با پشاور قائم کرد و تصویر که از امارات و وزیرستان داد کاملا تصویری بود که در یکی از گپ‌های خود دیره زیاد تکرار میکرد که امارات امارات به عنوان یک تشکل سیاسی و دینی هفتاد چند غلطی رو در نظام نظامداری قبول کرده ولی وقتی که وارد وزیرستان شدیم دیدیم که پینجا غلطی دیگه هم به دی اینا زیاد زیاده در انگلیسی یک معقول است میگه خطاره سهی نکردن خودش یک خطا آفریدن است وقتی که در پهلوی ازی تصویر که از وزیرستان بر ما داده بود کجا علما است و ما گمان این رو کردیم که مردمای صحابه صفت است مردمای هستند که به این آیه قرآن کریم که الله سبحانه و در یک جای از قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان رجیم و این به بمثل ما امنتم به فقط اهتدوا ما با این تصویر وارد وزیرستان شدیم. سخن کوتاه وقتی که پشاور رفتیم از اونجا رابطه ما جور شد و نهایت عمر در یک فشار ذهنی و جسمی از اینمی از همین پوسته های فوج مرتد پاکستان وارد وزیرستان شدیم. ولی وزیرستان قسمی که در, در برنامه قبلی گفتم که سفر به وزیرستان و گوشه از خاطراتم در آنجا همین حکایت از یک ضیافت یک عنوان در داخل کتاب است. و در کتاب ما وزیرستان شهر عجوبان نام گذاشتیم یعنی در امو جای که ترکیز مجاهدین بود واقعا یک وحشت حاکم بود وقتی که وارد اونجا شدیم بعد بعد سفری نمودن چند روز ما وارد محسکرات شدیم و خاطرات را که ما از محسکرات داریم بسیار تلخ است. همین هر خاطره را که صفحهش باز میکنیم رنگ میافردین استاد در این بارم که قمناما کردین شما؟ در پیوان به وزیرستان بله در پیوان با وزیرستان در, وز... در پیوان به وزیرستان چیزی که در ذهن ما استک و بخش یک بخششه شد نوشته هم کردیم و چرا این تحت یک انوان در یک کتاب جمائری نکردیم به خاطر که اینجا امکانات به اون حد نیست که در شهر راست. از نت ما استفاده کرده نمیتونیم و کتاب‌های زیاد پیشمون نیست که اراده اراده بنده در پیوند به کتابی بود که پیش ازی که وارد بحث در پیوند به بخش عظم زندگی بخش جهادیست که در آنجا بودم می خواهم که معلومات در پیوان با ساختار جخرافیوی وزیرستان داشته باشم ولی چون از نظر فکر از نظر اقوام از نظر طرز عنانات از نظر اقتصاد و از نظر سیاسی و از نظر که همین تشکل قوم وزیر و محسود و ساختار فکر و جامعه که حاکم بود یک مختصر مقدمه پرتون باده زود وارده از این ولی به شکل پراگنده همین چیزهایی را که پیش در برنامه قبلی گفتم نوشته بخش عظمش در ذهن ماست انشالا با آمدن بعض منابع که ما خواستیم کوشش میکنیم که کتاب هم تکمیل شود و یک تصویر زنده از آنجا داده شد خو گفره که پیش شما سوال کردین ای بود وقتی که داخل معسکرات شدیم در معسکرات واقعا ما خاطرات تلخ خدا داشتیم به تعبیر ها نه به تعبیر سلیقه و به تعبیر تعصب و به تعبیر طرف واقع ها بلکه از طرف یک آدم مستقل یکی از خاطرات طرق در معسکرات در معسکرات میرامشاه یا معسکرات که مربوط به شبکه حقانی و امصاله هم بودن بیشتر مثال از سپیشل فورس امریکایی ها داده می شد و این نقطه رنجش بود که الله سبحانه و تعالی می گه بالله من الشیطان رو دیم لقد کان لکن فی رسول الله و سواتن حسنه بهترین نلگو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با ما بود و طرز زندگیر باید ما از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میامختیم از تابلوی بشریت یعنی شخصی که هزار لحاظت یک شخص سیاسی مزامی یک شخص مطلق در ناهی عمل کرد بود در, در طرز عمل زندگی و از صحابه بیاموزیم و از اصلاف ما خیر القرون مردم که تابی و تب تابین و از خلف ما ولی مشکل اینجا بود که اونا به او حر جهاد به مفهوم جهاد نمیشناختن و بیشتر تحت تاثیر افکار بیگانگان بودن و این مسال بالای ما خوب به یادم که که برادر در پیون با گل بودین تماس گرفتم حتی اسلحه را بالا این بالا کرد و این هم یکی از خاطرات تلخ ما بود ولی در کل در فضای معسکر فضای بدعت و خرافات و گپ هایی که منافع با باز باز بوده. که بسیار از جوان را مخشوش ساختن. بعض خاطرات بسیار جالب برای ما بود این که اما تو واضح واضح باشه که در وزیرستان در صفح امارت کدام نقاط منفی را شما در اونا دیدین؟ یک چند مسئله را متوازی وازی بر ما بگوین تا که دیگه بشنون بشنوان و از هان از اونا هم یک ذره خام یک چند مسئله که بسیار مهم و بنیادی در اونجا بود ای بود که مرتدین پاکستانی در یک فاصله نزدیک با بازار وزیدستان واقع بودن به یک روایت که ما تحقیق کردیم می گفتن که شش هزار فوجی مجهز با اصلحه سقیله و خفیفه و با تیاره, تیاره های جنگی و اکمال دوامدار در آنجا مقیم بود یک قلعه بود در اونجا فوج پاکستان مستقر بود در یک فاصله صد متری با بازار و نقطه تمرکز و نقطه تجمع مجاهدین واقع بود و به یک روایت دیگر شست هزار فوجی به بخاطر نگه کردن چی بودن خب در کل یکی از مسائل مهم ای بود که همی فوجی ها و امی تیاره های بدون سرنشین و اونجا یک فرق قائل بود مم. یعنی در اونجا معسکرات که مربوط به شبکه اقانی و امارت بود اینا از در این شک نیست که اینا وابسته بود اونو معسکرات که مربوط به امارت بود کمتر مورد شلیک راکت های دیاره های بدون سرنشین قرار میگرد و موسکراتی که مربوط به القاعده و یک جا جا جماعت که زیربنایش بنایش به اساس و اصل قرآنی و اصل نبوی بود زودتر می شد همین عربا در آنجا گشت و گزار میکردن حتی در یکی از واقعات تلخی که ما همانجا در معسکر بودیم و یکونیم روز در اونجا جنگ دوامدار شد و مارکت اصلها از هم پاشید ای بود که عکیم الله محسود رحمه الله الله سبحانه وتعالی غریق رحمت کنش در بازار آمده بود وقتی که بادیگارش بیرون شده بود دیده بود که فوت چاپه زده بازنبه رو عمومی اعلان کرد که به کمک و نصرت ما بیایید همی مهاجرین متعلق به عرب و متعلق به ترکستان شرقی و متعلق به اوزبک همه بیرون شدن با اسلحه و وسایل خفیف و سکیلی خود تا از یک برادر مجاهد و یک مؤمن نستو در برابر فوج مرتد پاکستان مبارزه کنن و از اینها حمایت کنن ولی متاسفانه ولی متاسفانه ولی متاسفانه که شبکه قانونی با مدار و دسته و امکانات وافره که داشت جای به جای در خانه ها و مراکز خود نشسته بود وقتی که سوال میکردی که چرا ای را مورد آماج و مورد اسلحه های سقیله و خفیفی، امی مرتدین قرار گرفته شما چرا اینا را نصرت نمیکنید باز میگفتن که ما معاهده داریم با فوج پاکستان باز من میگفتن که معاهده معاهده مسلمان کوشیست کی این مسلمانه بکشین این مسلمانه بگذارید استاد در میباره معاهده خودتان گ مواحده که رسول الله صلی الله علیه وسلم با مشرکین و کفار کرد فرق بین عظیمه و فرق بین ازی موااهده که امارت با فوج پاکستان کلا بود چی بسیار از جوانان فعلا نمیان دلیل میگیرن و میگن که امارت با فوج پاکستان موااهده امضا کرده بود این فرق بین ازی موااهده و فرق بین ازی پیامبر صلی الله علیه و چی بود در کل اسلام دینی نیست که تنها در مساله اخلاقیات تماس گرفته باشد. یا در مسئله احوال شخصی، یا در کانون و خانوادگی یا در مسئله تجارت بلکه اسلام یک دین است کامل است و در هر بخش برنامه خود داره چون مسئله میثاق و پیمان یک مسئله مهم در ساختار اداره و در ساختار نظام و نظامداری است در اسلام اصلی از خود داره مشکل کلان همین است که امارت به یک تشکل به عنوان یک تشکل از مسائل دور بود و کسانی که مسائل می فهمید که روی کدام زوابط علیه کفار ما بتازیم و روی کدام زوابط بین ما و اینها روابط باشه و روی کدام زوابط بین ما میساقها باشه یا عهد و پیمان که در مدینه منعقش شد بین سه قوم بنی قینقا و بنی نظیر و بنی مستلق و همثال هم او عرب بود و مجاهدین خارجی بود کسانی که بهترین زندگی ها را ترک کرده بودند و در فضای منهج زندگی میکردند منهجی بودن اونها مطرح بود ولی اونها محدود بود اگر کدام وقت تصرف هم میکرد صلاحیتشون محدود میکرد و سر از اینها محدودیت وارد دیگه در فرهنگ طالبانیزم یا حرکت امارت چیزی به نام میثاق به اساس وجود نداشت همین زنده بندای سیاسی بود یک مشکل کلان امارت و کلانایی که مربوط به امارت است الا الله کسانی که می فامیدن و محدود بودن مثل استاد یاسر، مثل استاد اسلامیار رحمه الله و هم. مشکل اساسی بود که پاکستان مرتد است یک کافر است که اساس کفرش ارتداد است و ارتداد حکمش در اسلام منبدل دینه فقتلوه قوی ترین کلام نتیجه در مقابل این مردم تکلیفی از که رو نه یکی کتش کنی ما قرار امون معلومات کمی که در پیوان بسیدت داریم ما یک واقعه سراغ نداریم که با مرتدین مرتدین ماهده شده باشه و فوج پاکستان مرتد اعتقادی استک کسی هست که از سال به ایسو مسلمان کشته میده و عالم دارد ماشین مسلمان کشی اینا جریان دارد و یکی کافر اصلی است یک فرق بین ازیز امی کافر اصلی کافر اصلی مثل یهود و نصارا و همساله هم اینا کتینها ها معاهده شده و در معاهده قرار گپهای که ما یا در کتوب دیدیم یکی یه که کت کافر اصلی وقتی که تو مدد یا کمک ازو میگیری برندستی از تو باشه در حال که ما می‌دیدیم که در یک هفته یک بار فوج خدا تجهیز میکرد و با تجززه در روز کارفی میکرد کارفی یک اصلاحی نظامی بود که فوج پاکستان خود مجهز از نظر اسباب و وسایل و خوراک و کفایی که متعلق به فرهنگ موعقری است در او یک روز فوجها در نقاط مختلف منتشر میشدن مستقر میشدن یک نفر اگر سر بالا میکده ولو که هر قدر کلان کلان میبود کت مرمی در فرق سرش میزد و بسیار واقعات داشتیم که مجایدین خارجی برامدن موترشان کت علاونداز زنن و آنها را از هم پوشید میثاق میساق بچی حد بود یک مشکل دیگه در سیرت همه چیز واضح است قرآن کریم نیتو چیز را در ابهام نگذاشتن در سیرت رسول الله صلی اللہ و وسلم همین میساق و است. که اینی ماده, اینی ماده اینی ماده اینی ماده اینی ماده تحت اینی شرایط از طرف رسول و ستونه با بنی مستلق و بنی قادعزه و بنی نزیر منعقد شد یعنی امروز هم ما از او پیام میگیریم ولی میثاق و معهده در نخست یا انکار می‌کردند میکردن و در عمل بیدید که یا به اونمو میثاق و به اونمو و میساق حرکت میکنن منکرش میشد و, و کسانی که به این قائل بودند. یعنی سخن است از دهن خود کلان این شبکه اقانی ما شنیدیم که ما میساق معاهده داریم کتازی ولی ماهده مفردات ماهده گپایی که متعلق به خاکی او مواد معاهده است یک ماهده مجهول بود اول نفس ماهده با ای مرتدین زیر سوال شرعی است و دوم ماهده ماهده مجهول بود ماهده چه قسم بود با کدام شرایط در کجا منقب شده سیها او اشتراک کرده بود آیا شراید ماهیده او در نظر گرفته شده اصلا وجود ندار بس یک ماهیده سیاسی بود اسلامی نبود ذوابط دینی دو اصلا نشده بود خب استاد شما در اول وقتی که به وزیرستان رفتین بسیار به احساسات رفتین با امارت اسلامی پیواستین بعد از اینکه امی اعمال زشت دیدین در امارت اظهار پریشانی میکدین باز روزی شما چی تصمیم گرفتین؟ هدف ما از خانه وقتی که بیرون شدیم هدف ما ای بود که ما بازگشت نداشته باشیم ولی وقتی که اونجا حالت و ماحل و محیط و بدعت و خرافات و گبهای منافی با اخلاق توحید و اخلاق دین که دیدیم از امون نظریه و فکر و ماندن خود منصرف شدیم و طبیعی است که را اونجا در مقتی اول که به عنوان یک متعلم و کسی که تدریبه باید بیاموزم سپراندم. مرحله دوم مرحله بود که من به عنوان یک استاد پیش یک از استاذا استاد ابوباید عبدالله العدم المقدسی. رحمه الله استاد ما بود پیش از او درس خوانم و وارد درس های استقبارات و امن شدم و تقریبا چهار پنج ما اونجا گزاراندم و یک بار دیگر هم مقتهی در بینمی امی دوره تدریب و دوره تدریس من به یک مقتی کتا اونجا رفته بودم هدف ما اونجا او یکی از علماء در یکی از کتاب خود در پیوان به توحید نشته کنه که یک نفر تا اونو وقت میتونه که مبتدین باشه نشست برخواست کنه که هدفش اصلاح باشه و وقتی که تا جایره که ما در اصلاح به حالت خود گذاشته گزاشت شدیم و ما اصلاح را به مردم تقدیم کردیم خیرخواهی تقدیم کردیم حالا سبیل همو فهم و درک و درایت و تفاهسی که داشتیم ما اونجا ماندیم ولی نهایت امر فشار به حد زیاد شد که ما مجبور شدیم از این که حیثیت شویم و از این که شدیم و ترور شخصیت شیم اگرچه فشارا زیاد بود درسای ما مستقل تعقیب میشد مخبرین میآمدند در درسا اشتراک میکردن چند بار از کمیسون مردم خود چون ما در دوره این تعهد کرده بودم که هر دوره خدا آخرین دوره تلقی میکردم و از دوره اول اولتر هم دوره دوم و سوم و چهارم غلیسر تقدیم بکنم وقتی که از اینا چی شدیم خوصف دیگه نبود بدیل وجود نداشت و اگر بدیل وجود میداشت یکی از بزرگان همیشه با کیقانی رو گفتم اگر بدیل باشم واحدین به باش ما سر نمی زند ولی چون بدیل نبود بخاطر خاطر اینکه ما از عواقب بد ترک جهاد و نفاق و امصال هم می ترسیدیم ما در اینمی عرکت سازش و بودوباش خدا خیر می خب خوب استاد بعضی کسا به خلافت اسلامی الحمدلله در خراسان شروع شد و بعضی مردم ها مخالفت, ای مخالفت کردن شما شتو در وقت مخالفت کردین یا نکردین؟ باز هم با همان تلخی ها تماس چون صفه که بر ما بسیار صف معتبر بود چند بار من اراده کردم که به یک فرد در یک جماعتی که رنگ ذابطه داشته باشه یا جماعتی که حداقل پشتوانیش قرآن و سنت باشه بروم که جماعت جماعت القاعده بود خود در کل القاعده هم در پالوی خوبی ها مشکلات خود داشت یکی در ناحیه دعوت به عنوان یک حرکت بسار می میکرد اکثر وقتی که دعوت در نایه توحید میشد باز اینا که دشمن مشترک باید بزنیم صحیح دشمن مشترک میزنیم ولی توحید و پخشو نشر میکنیم این مسئله بود وقتی که تصمیم گرفتم که برم خو بازی را در ذهن و فکر خود آوردم که ای هم ای جماعت هم اگر چیز جماعت است که خیر داشت زیاد است و جماعت است که امروز زیر از ما خیر ما هم زندگی خدا بسر سر قطع نظر از او اختلافات که بین القایده و دولت اسلامی از کلانای اینها را الله سبحانه وتعالی فهم نصیب کنه و ذهنشان در این مسئله خلاص کنه کنها هم بیاین ولی در کن ای بینوانی به یک اصل میپذیرفتم در فرهنگ زندگیم در همان وقت که هم زیر شوای امین امارت و اینا هم محدود است اگر اونجا هم بری باز هم امی اکمالات از امو جمعه و اینمی استراتیژی و میکانزم کاری و دسپیزمی متعلق به امو جای بود کدام وسعت نبود کدام برتری را نمی دیدم برتری امی بود که در اوجا بعض گپهای های متعلق به خیرخواهی و توحید در ناهی مسلحت ها و لفافه ها بر مردم و اعضای القائده تقدیم میشد. و فرق دیگه شی بود که بیشتر افرادی که متعلق به جماعت القایده بود زود شهید شه و اکثر جوازیز جوازیز اونجا دو سه قسم استخدام شد یکی جوازیز بود که از پاکستان استخدام می و یکی جوازیز بود که از افغانستان استخدام می شد که از پاکستان استخدام میشد، اونا بیشتر برشان برنامه ی قسم داده میشد شد جاها را هدف قرار بدهند یا سیم پرتن که فکر فراج ها دارند یعنی مرزا نه در فرهنگ زندگیشون فکر کردن دردمن شدن به خاطر امت است و کسانی که مطابق دیسیپلین و مکانیسم های مخفی در رأس اداره آیسای پیش میرفت اونا 3 سال و چهار سال و حداقل 15 روز و 20 روز و 3 ماه و چار ماه موعظات خود در در داخلمی بازار حفظ میکردن و وقتی که خلافت وقتی که Uh, ما یک دور زندگی ما تقریباً 3 4 سال یا 5 سال یا 6 سال که در صف جهادی ماندیم یک بخش اعظمش در کنر سفران و از اونجا هم خاطرات تعلق دارم و نهایت امر این شد که در خانه بنشینم یک وظیفه کنم کفالت یک بیوه و یتیمه بواعد بگیرم با پیش الله سبحانه و در روز آخرت پیش کنم چون بسیار بتنگ شده بودیم در کنر وقتی که سوال می‌کرد برادران نهایت سوال‌ها را به این جواب ما دافع میکردم که الله سبحانه همی و تعالی جهاد و qital و آمدن و جهد و مجاهده مجاهده ما را در زیف زیر زیر inimی صف غلام inimی صف ملوث inimی صفه inimی صف که اساس و بنیادش به انگیوالی است چی بگردانه مقبول بگردانه ولی وقتی که در پالو inimی مسئولیت ها چیزی به نام خلافت انفلاق در توسط ابوبکر ابوبکر البغدادی حفظه الله چند ماه به اساس متصویر منفی از جماعتا داشتم سر ازی هم توقف کردم و این مسئله را جدی نگرفتم اگرچه کتی کسای که اینجا مسئولین بودند و از اونجا تعیین شده بودند که بیعت باید بگیرن. شش ماه ما از بیعت دور ماندم چون ایرام به دیده شک میدیدم ولی بعدا متوجه شدم که این یک مسئله جدی هست و باید دی جدی اقتام کرد و باید کردیم و الحمدالله یک مدت زمان در استودیو بودیم بخش فارسی رو پیش میبردیم و فارسی رو ترجمه می‌کردیم بعضی گپایی که متعلق به زید نویسی فارسی بود دور ترجمه می‌کردیم. بعد از او باز تصمیم گرفتیم که از دارالحر بجرت کنیم و به خاک مقدس اسلام و تطبیق شریعت به خراسان قدم رنجه کنیم الحمدلله. جزاك الله خیر استاد د پایان برنامه دقایق اخیر برنامه قرار داریم شنوندگان محترم در برنامه ی آینده با ما باشید استاد احرار در صحیفه فکری مطرح می میبینیم که کفار چی نقشه هایی دارن انشاءالله تعالی استاد احرار تمام شب برنامه ما می سازه و چهره های خبیث ازی کفار را بر ما آشکار می و قدم پلان های دارن ان شاء تعالی همیشه فاش می سازه برام در برنامه های آینده با ما باشید سبحانك اللهم بحمد اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك